نامه به یک نفر که پنجاه سال بعد از این زندگی می کند به احتمال زیاد تو فکر می کنی که ما از فیلها وزق طلایی گرگ تاسمانی و همه گونه های نهنگ که نسلشان به دام انقراض افتاد نفرت داشتیم قاعدتا به نظر تو ما نمیخواستیم بجز بنزن جیوه و شکم تکه تکه شده مرغان دریایی با سوخت جت و پلاستیک چیزی برای تو باقی بگذاریم شاید تو اصلا به ظرفیت شاد بودن ما شک کنی ولی من به تو اطمینان می‌دهم که ما می توانستیم شاد باشیم ما هنوز در آن زمان آسمان شب را داشتیم و همانند پیشینیانمان درخشش سوبر فلکی را تحسین می‌کردیم بدون شک هنوز چندتایی جنگل وجود داشت بدون شک هنوز چندهایی دریاچه داشتیم حرفم این است که همش سرب و دیوکسید گوگرد نبود در آن زمان زنبورها وجود داشتند و آنها بهشتی از گلها را گرددفشانی می‌کردند تا که ما در رمز و رازهای عظیم تأمل کنیم و در نهایت بپرسیم هی hey guys, واتس ترانسندنس و بعد همه زنبورها مرده بودند سلام علیه سخاوتی هستم با برنامه 11 پادکست 822 امروز دوشنبه 28 فروردین 1396 امروز در حقیقت بعد از ظهر دوشنبه ساعت 6 که من تازه دارم این پادکست رو می کنم ببخشید دیکم دیگه شده صبح یه جایی در مورد یه جایی خوشحاب و هوایی در مورد معماری بومی و دانش معماری بومی مخصوصا معماری روستایی اگه بخوام دقیق تر بگم چرت و پرت میگفتیم به خاطر همین بیشتر زمان روزم سپری شد برای بافتن لاتایلات در زمینه چیزی که بیشتر در زمینه شنیدنش چون من زیاد حرف نزدم زیاد من در این زمینه حرف زنم به خاطر این که خودم میدونم بهتر زیاد حرف نزدم چون تاریخچه خیلی درخشانی تو این زمینه ندارم چند روز پیش از زرخش میومدم تهران و دو سه روز اونجا رو تمیز کرده بودیم به کمک مادرم و کلی زباله از این دو سه سالی که اونجا ساخته شده بود دور خونه تلمبار شده بود این زباله ها که عمدتاً هم پلاستیک بودن رو توی کیسه های زیادی جمع کردیم و اینا اینقدر زیاد شد که داخل سطح زباله روستا دیگه نمیشد گذاشت اصن جا نمیشد و مجبور شدم اینا رو بذارم توی صندوق عرب ماشین و با خودم بیارم تهران ما مثلاً ها زباله از تهران به مناطق خوشا آب... و هوای کشور میبریم بلکه زباله از مناطق خوشا با هوا به تهران هم میاریم از زرخشت برمیگشتم تنهایی داشتم رانندگی میکردم به سمت تهران و دقت کردم که من توی این چند سالی که مشغول ساختن اونجا بودم بیشتر از هزار کیلومتر رانندگی کردم که عمدهشم صرف رفتن به اونجا و برگشت از اونجا شده بین خونه که در حال ساختش بودم در اونجا و خونه ای که در حال زندگی درش بودم در تهران ست هزار کیلومتر یعنی اگر متوسط 100 کیلومتر در ساعت هم حساب بکنیم میشه بیشتر از هزار ساعت که خیلی وقتا کمتر 100 کیلومتر بوده مثلا تو ترافیک و این رو اگر جمع بزنیم با سفرهای دیگه‌ای که داشتم به صورت هوایی زمینی با وسایل حمل و نقل عمومی قطار اتوبوس خیلی بیشتر از صد هزار کیلومتر میشه توی توی سه سال 4 سال و این نشون میده که من مثل یک مرغ پرکنده در حال جابجا شدن بودم در حال این برنامه رفتن بودم افغانی‌ها یه کلمه‌ی جالبی دارن به نام بیجا شدگی که این این بی خانمانیه که ما میگه من اینو تو اخبار شنیدم وقتی یه یه جو زلزله میشه یا جنگ اتفاق میفته کسانی که آواره میشن رو میگن بیجا ولی توی ف... توی ادبیات خودمون من فکر می کنم معنای بامزه پیدا میکنه بیجا میشه مدل فارسی کلمه پلیسلس در انگلیسی به معنای کسی که جامکان مشخصی نداره و بین جامکان های مش... متفاوت در رفت آمده مثل سیلزمنی که دارمان باید سفر بکنه و تعداد روزایی که در یک خونه میگذرونه این آدم خیلی زیاد نیست نسبت به تعداد روزایی که در سفره من خودم حالا اینجوری فکر نکرده بودم به تعداد روزای در حرکت خودم فکر می کردم که خیلی تعداد روزایی زیادی ثابت توی خونه هستم ست هزار کیلومتر من توی سه سال اخیر فقط رانندگی کردم و بعد چیزی جالبی که داشتم به, به همین موضوع فکر می کردم، باز برای باری چندوم،, چندوم به یه تابلوی برخوردم که نرسیده به قذوین یه بیلبوردی نصب شده بود که مردم رو دعوت میکرد به گردشگری در قذوین که این بیلبرد توی ایدم خیلی من توی تهران دیده بودم از تهران به سمت قذین که میرین توی اتوبان خیلی این بیلبرد هست از رشت به سمت هم که میانی توی اتوبان چندین جا این بیلبرورد هست خدا من جای دیگه ای سفر نکردم هنوز امسال. خدا میدونه که این تابلو رو کجاهای دیگه نصف کردند مسئولین قضبیین. و جالب ترین قسمت این تابلو که البته همه تابلوای شکنس ولی یکی از تابلوهایی که زیادتر از بیلبوردهای دیگه نصب شده مردم دعوت میکنه به گردشگری یک روزه در قزوین که که خیلی هم جای تامل داره و هم جای خنده جای خندش به خاطر اینکه ما که یعنی دانشجو بودم شاید اون اون یه جوکی در اومده بود که وقتی کسی وارد غزبین میشه یه بیلبورد نصب نست شده که این سوالو میپرسه که خوش به غزبین خوش آمدید و وقتی که از غزبین خارج میشه این سوال عوض میشه که خوشتان آمد از با همون لحجه غزبینی باید اینو بگین، خوشتان آمد یه همچین چیزی اینا،, اینا مثلا بقیه جوکای ریسیست و سکسیستیه که برای بقیه, بقیه اقوام و شهرهای کشورمون وجود داشت کرده من فکرم کمتر شده خیلی این جوک رو من نمیشنم یا من تو اون دایره دیگه نیستم نمیدونم ولی این جوک بیل بورد های ما خیلی معروف بود یه جوکه دیگم بود که یه طرف نوشته بود یاهو بعد یه طرف دیگه نوشته بود یوهو یه همچین چیزی ولی اینکه این بیل دعوت میکنه مسافر رو به سفر یک روزه به غزبین این برداشته میشه کرد به شکل منفی که شب موندن نیسته. شما باید سفری یک روزه به غزمیم بکنید و قبل از تاریک هوا اون شهر رو ترک بکنیم از این قسمت شوخی یعنی تنظامیز این بیل بورد که بگذاریم، واقعیتی که درش نهفته است این هستش که مسافر امروزی یا گردشگر امروزی اصولاً آدم امروزی زمان توقف زیادی توی یه جا نداره حتی تو خونه خودش به خاطر همینی که من ست هزار توی سه سال گذشته رانندهی کردم آدم امروزی به توسط اتومبیلی که داره و این اوتوموبیلی میشه گفت ادام، امتدادی یا اکستنشنی از پاهاشه میتونه هزاران کیلومتر در یه زمان کوتاهی سفر بکنه و وقتی به یه جایی سفر میکنه بلافاصله بعد از دیدن اونجا و این, این دیدنم خودش البته دیگه خیلی طولانی یا عمیق نیست در این حدی که یکی دو تا سلفی بگیره از اون جایی که رفته میتونه به راه شمال و بره یه جای دیگه و یه سلفی دیگه بگیره این فقط دو جایی میگرده که اون سلفیش رو جذاب بکنه برای عکس پروفایلش یا عکس اینستاگرامش یا فیسبوکش که بتونه لایک های بیشتری بگیره و برای چند لحظه توجه دوستاش رو که قاعدتا دیگه خیلی زیاد اینا رو نمیبینه و صرفا از طریق تبادله عکس و شیر کردن عکس باشون در ارتباط هست اینا رو برای چند تا اینسترس بکنه که در یک نمی‌دونم مثلا آوانبار خیلی قدیمی در قزوین یک لحظه قرار گرفته و اونجا عکس داره یا در یک حمام قدیمی یا در یک بازار خیلی قدیمی که توسط یونسکو چند میلیون دلار برای بازسازیش هزینه صرف شده توی این تاب... توی این بیلبورد یه علمان دیگه هم زکت شده و اونم این هستش که قذبین پای تخت و گردشگران رو دوت میکنه بازدید از پای تخت صفدی حالا این چه معنایی میتونه داشته باشه برای مخاطب امروزی واقعا جای سوال داره چیزی که واضحه اینه که یک, یک شکوه و یک عظمتی از دوران صفوی، به هر صورت در ازهان بعضی برق... ممکنه وجود داشته باشه که صرف این که یک شهری یک زمانی پایتخت تخت بوده همین کافیه که ارزش داشته باشه من برم رو ببینم وقتی من دانش آموز بودم دانش آموز راه نمایی که بودم خونمون یه جایی از شهر غزبین بود که وقتی میخواستم برم مدرسه هر روز از یکی از دروازه های رد می شدم به نام دروازه راکوش می گفتن غزبینی ها ولی کلمه درستش راه کوشک بوده احتمالا حالا این دروازه به کجا می رفته من نمی این این خیلی نزدیک خونه ما بود من از خونه می رفتم از زیر این دروازه رد می شدم می رفتم مدرسه و بعد از این دروازه یادم یه کوچه باقیایی بود که کلی باق بود الان فکر می کنم تا یه مترش هم مونده باشه باق از وسط اونا رد می و بعد از گذشتن از یکی دو تا خیابون دیگه می رسیدم به مدرسه راهنماییمون و برگشتم دوباره از همین مسیر برمی گشتم و دوباره از زیرین دروازه رد می و میرسیدم به خونه این یکی از آثار باستانی قذبین بود که به مدت سه سال من از زیرش رد شدم هر روز روزی دوبار تو مدرسه دبیرستان که می رفتم از اینم تر بود به خاطر اینکه دبیرستان ما خیلی نزدیک بود به کاخ شه اگه اشتباه نکنم همون شاهی که پایتخت رو از قزوین به اصفهان لعن... منتقل کرد خدا لعنتش نکنه ظاهرا هم خیلی آدم معروفیه من تو ویکی‌پدیا میخوندم خیلی آثار مثبتی ظاهران از خودش به جا گذاشته از جمله ساختن سی پل اصفهان اون موقع این کاخ هنوز مقصد گر اصلا موقع گردشگری به مفهوم امروزی خیلی باب نبود و هنوز اون موقع مردم فکر نمی‌کردن که این چقدر تونه از لحاظ اقتصادی تولید ثروت و درآمد بکنه و کل کشور هنوز به گردشگری ایمان نیاورده بودن به خاطر همین این کاخ درش باز بود و ما از مدرسه که می اومدیم بیرون یعنی از دبیرستان بعضی روزها با دوستان می رفتیم داخلش و میچرخیدیم راحت میتونستیم بریم طبقه بالا و طبقه پایین، در اتاقاش باز بود، شاید هر چیزی که اونجا بود برده بودن، جز یکی دو تا چیز خیلی سنگین و سنگی که نمیشد جا به بکنیم. ولی خیلی خوب یادمه که کاخ کاملا سالم بود، ما توش آزاده نمیچرخیدیم توی حیاتش، توی فضای باخشش و توی اتاقای مختلفش، ساختمون باشکویی داشت یادمه که حتی توی ایگوناش میتونستیم بریم کاملا باز بود همه چیز و سالم یعنی یادم نمیاد که قسمتی از این ساختمون ریخته شده بود یا سقفش ریزش کرده بود با وجودی که اون موقع مرمت زیادی هم شاید نمیشد و به آثار باسایی نمیپرداختن این یه دونه کاخش شعباس خیلی خیلی سالم،, سالم مونده بود برخلاف مثلا بازار سد و سلطانه که تخریب خیلی زیادی شده بود من خیلی وقتا بعضی از رو رفته بودم دوران بچگیم ریزش کرده بود خیلی از مغازه ها بسته بود از یه جایی بومبرتر دیگه اصلا نمیشد بری تا همین چند سال قبل که یونسکو فاند کرد اونجا رو بازسازی کردن و پار پیارسال که رفتم اونجا واقعا امپریس شدم که چه عظمتی رو اونجا بازسازی کردن و چقدر این بازار بزرگ بود و مثلا نمیرستم اینقدر بزرگه دیگه چیزهایی که یادم مثلا یه ای بود که بعدن من فهمیدم تا همین چند سال پیش که یه تمدن چند هزار ساله بوده اونجا به نام میمون قلعه که چیزی دروبرش نبود حتی این نرده دورش نکشیده بودن و بچه‌ها روی این تپه میرفتن و بازی میکردن روی یک تمدن چند هزار ساله الان فکر میکنم دورشو رو بستندی که چندتا تا آبنبار بود اگر اشتباه نکنم ما یکی دو بار در دوران بچگی میرفتیم میدیدیم یه آبنباری بود که نزدیک خونه پدر بزرگم بود که ظاهراً تا همین دوران کودکی من اونجا آب داشته و استفاده میکردن ازش به عنوان آبنبار مادر من اونجا بچه که بوده هر وقت که آب نده ندار... از اونجا آب خونشون رو تحمیل می کردن و مادر من توی 5-6 سالگیش تعریف می کنه که از اونجا آب می آورده خونه ظاهرا قذبین بیشترین آثار باستانی رو داره توی شهرهای دیگه و این ظاهرن برای خیلی میتونه جای افتخار داشته باشه حالا به من نمیدونم چه چیزش میتونه افتخار و میز باشه همم های خیلی باستانی و خیلی قابل توجهی داره من خودم خیلی به با آثار باستانی علاقه خاصی یعنی اگرم یک جایی میرم کمترین چیزی که برای من جلب توجه میکنه آثار باستانی شه و بیشترین چیزی که برای من جلب توجه میکنه قضاییه که اون مردم میخورند و به خصوص اگر این با جوجی کباب یا کباب کوبیده یا م... پیتزا متفاوت باشه یعنی غذایی باشه که یه اصالتی یه تفاوتی داره و ویژه مردم همونجاست یکی دوتا ق... قضبینی یکی دوتا از این قضاها دارن حالا به جز که تو این سالهای اخیر دوباره خیلی معروف شد و خیلی به اقتصاد اون شهر کمک کرد و این شهر رو چند برابر کرد 7-8-10-20 جور شیرینیه که مامان من هم هنوز هر سال میپذه و خیلی شیرینی های خوشمزهیه قضاهایی که دارن یه قضایی هست بنامه قیم و این پادکست معرفی قزوین شد و شیرین پلو خیلی قضاهایی شیرین دوست دارن قضوینیه مثلا فسنجونشون هم برخلاف فسنجون های شمالی شیرینه دشت قزوین خیلی برای من همیشه جذاب و الهان بخش بود به خاطر اینکه شاید پدر بزرگم اونجا باغ داشت ما دائمان توی این باغا ولو بودیم این باغای سنتی امدتاً بادوم یا پسته یه کسی مثل پدر بزرگ من تقریباً تمام عمرش رو بین خونش و باغاش که چند کیلومتر بود که هر روز پیاده میرفت سپری کرد و هم از قزمین دور میشد سالی یه بار بود که در فصل زمستون که کشاورزی نداشت میرفت مشهد فقط میرفت مشهد در سال جای دیگه نمیرفت یه بارم شاید فکر کنم رفته بوده مکه چرا حاجی بود این کل حرکتش بود و فکر میکنم یه احساس تعلق خاطر خیلی شدیدتری مثل کسی مثل نسبت به کسی مثل من داشت راجب، نسبت به جایی که زندگی میکرد شهرش جاش، مکانش اه، پلیسش اه، پدر بزرگ من یا خیلی از اون نسل کسایی بودن که یه مکانی داشتن یه ای داشتن واقعا میشد بگی که مثل یه درخت اینا ریشه دارن و میزان حالا اگر از فلسفه و تعریف کسی مثل هایدگر استفاده بکنیم یه کیرن کانسرن خاصی ی باعث می شد که یک جغرافیا یک جای فیزیکی رو تبدیل بکنه به جای زندگی اینا به پلیسی که بهش تعلق خاطر داشتن و این رو متمایز می کرد از جاهای دیگه براشون اگر سالی یه بار جای دیگه ای می میرفتن اونجا خارج براشون محسوب می شد و بعد از یک هفته ده روز برمیگشتن به داخلی که خونشون پلیسشون رو براشون تعریف میکردن و تمام عمرشون رو خیلی راضی بودن که اونجا بگذرانن به خصوص تو این سال های اخیر من فکر بکنم نسل های بعد از من این مشه رو یا این پدیده رو خیلی بیشتر در زندگی خودشون شاهدن اون اینتنسیتی اون شدت بودن، موندن و تعلق به یک جای خاص خیلی کمتر شده دیگه در یک زمان زندگی 70-80 ساله کسی خیلی بعیده که به یک جا بتونه تعلق داشته باشه و اون رو پلیس خودش تصور بکنه ما تکنولوژی داریم که ما رو خیلی سریع میتونه ببره به یک جایی و دوباره از اونجا ببره به یک جایی دیگه اگر اگر در یک چشمندازی بین مثلا چه میدونم لوشان و قذوین توقف میکنیم برای خستگی در کردن یا دیدن یا اکس گرفتن یا خوردن یک چیز یا بنزین زدن این فقط برای اینه که یه لحظه ای رو توی چندین ترابایت از حافظه ای که در اختیارمون هست زبط بکنیم به شکل چند تا اکس دیجیتال و اون فقط یک گزینه از میلیون ها دیگه پیش روی ماست که میتونیم در ادامه مسیر داشته باشیم و باز چند تا اکس دیگه بگیریم کسی مثل پدر بزرگی من اینجوری به زندگیش نگاه نمی به خاطر همین شاید یه ذره زیاده ردی باشه اگه بگیم که کسانی مثل ما پلیسلس هستن اتفاقا ما پلیس های بیشتری داریم منطقه مدت زمانی که تو این پلیس ها سرف میکنیم خیلی کمتر از اوناست ما بی نیستیم ما چند جایی هستیم اه، اه خانمان واقعا نمیشه اسمشو گذاشت من بین دو تا خونه که هر کدومم در نوع خودش خیلی لذت بخش زندگی درش آواره هستم دائما در رفت و آمده بین این دوتام. من صد هزار کیلومتر در سه سال گذشته رانگی کردم و هزار ساعت شاید دو هزار ساعت توی راه بودم فقط توی سه چهار سالی که گذشته. اگر تو کل عمرم بخوام جمع بزنم که این عدد خیلی عجیب قریبتر خواهد شد و در این حال حتی زمانی که ما توی ماشین در حال راهندگی هستیم جالبینه که احساس پلیسلس بودن نمی کنیم. خود اون ماشین یک جایه برای ما میشه که برای خیلی ماشینشون بیشتر از خونهشون اهمیت داره شما اگر نگاه بکنید میزان نگهداری و مراقبتی که یه نفر از ماشینش میکنه اگر یک کسی ماشینش خط بیفته این رو سریع تعمیر میکنه صاف نقاشی میکنه به داخل ماشینش میرسه هفتهی دو هفتهی یک ماه حد اکثر یک بار این رو کارواش میوره ولی خونه خیلی هم اهمیتی نداره خونهایی هایی که تو سی چل, س... سی چل سال اخیر اگه ساخته شده در شما قطع بکنین خیلی تمیزیش راحتیش آسایشش نسبت به خونه هایی پدران و پدر بزرگان ما می ساختن معماریش خیلی اهمیت نداره اونقدری که تکنولوژی ماشین و ماشین پیشرفت کرده رفاه خونه پیشرفت نکرده چرا تکنولوژیش پیشرفت کرده سنگش و سرامیکش رو نمیدونم نقاشیش رو اینا خیلی پیشرفت کرده ولی معماریش و اون میزان از رفاه و حس پلیس دادن رو نه تنها بیشرفت نکرده بلکه تو پسرفت هم کرده اگر بخوایم با یار و مقیاس هایدگری بسنجیم اون میزان از کیرنگ کانسرنی که یه نفر نسبت به ماشینش داره اون نسبت به تعامل با ماشینش داره اون میزان از تعامل رو شاید با خونش با اتاقی که میخوابه نداره به خاطری که و همین هم است که این ماشین ابزاری برای بردن این آدم به فضاهای جدید به مکانهای جدید حتی اگر برای چند ثانیه شما در طول مسیری که این ماشین با سرعت 100 کیلومتر یا 90 کیلومتر در ساعت داره حرکت میکنه هم به عنوان راننده هم به عنوان سرنشین این خودرو مناظر اطراف رو میبینید برای کسری از ثانیه خودتون رو در زیر یک درخت در کنار یک رودخونه در مسیر کنار یک دریا یا دریاچه تصور میکنه و این ماشین که شما رو به چندین میلیون پلیس در چندین میلیون پلیس قرار میده و این امکان رو برای شما فراهم میکنه که در چند هزار از اینها پیاده بشیم سلفی بگیریم و برایتون اداره بدیم وقتی من بچه بودم و این همه آثار باستانی دوره برم بود که میتونستم برم ببینم و من از وجود خیلی آشت خبر نداشتم بزرگترین شکایت زندگیم به مادرم این بود که حسلم سر رفته از صبح تا شب حوصله من سر رفته بود و مادر من موظف بود که با پیدا کردن یه چیزی و امدتا پختن یه قضایی برای من, من رو سرگرم میکن البته بعضی وقتا من و برادرم خودمون یه روش های برای سرگرمی برای سرگرم اگر تابستون بود که توی کوچه با بچهای دیگه می کردیم یا اگر زمانهایی بود که با پسر داییام میتونستیم به باغ پدربزرگ هم بریم اونجا بازی کردیم. ولی جالبه که حتی بلافاصله بعد از برگشتن از این همه فعالیت سرگرم کننده اینتنس بعد از گذشت 5 دقیقه دوباره حوصله من سر رفته بود و من باید یک درمانی برای این بوردام خودم پیدا می‌کردم الان که خوب نگاه می‌کنم بعد از این 30 سال من هنوز همون آدمی هم که حوصله‌م دائما سر رفته و حالا درمانی که الان دارم ظاهرا توی جاده است وقتی شما رو اندگی میکنی به نوعی هر چه قدم بردم و نارضایتی از زندگی داشته باشین در داخل اون ماشینی در حال حرکت محدود میشه کانتین میشه و شما خیلی کاری از دستتون بر نمیاد خاطر همین باید رو بکنین تا به مقصد برسین به مقصدم که برسین اگر مقصد زرخشت باشه بعد گذشته دو روز بعد برگردیم خیلی فرصتی برای حوصله سر رفتن به شکل گذشته دیگه اونجا نیست حالا بماند که کلی کار ساختمونی هم هست اگرم به تهران برگردیم بعد از گذشته چهار پنج روز یا نهایت دو هفته که زم... در عرض چشم هم زدنی میگذره دوباره فرصت این میرسه که ما سوار ماشین شیم و به سمت زرخشت حرکت بکنیم این خودرو این ماشین یه ابداع خیلی عجیب غریب بشری بوده که تونسته توی این چند دهه گذشته ابنای بشر رو سرگرم بکنه و کاملا من منطقی میبینم رو که این همه آدم توی ماشیناشون اینور اونور برن اصلا قابل انتقاد نیست این پارک بغل خونه ما که کنار بزرگراه چمرانه و هم کنار بزرگراه همت توی چند سال اخیر افتتا شده بوستان فدک اگه اشتباه نکنم اسمش یانه نمیدونم چه اسمي داره بعضی وقتا شاید ده نفر توش نیستن ساعتی که خیلی فضای خوب پیاده روید و چرخ سواری داره و توی بهترین آب و هوای بهاری که نه بارون میاد نه آفتاب شدیدی دما مثل دمای شهرهای بلژیک 26 درجه است و اون همه گل کاشته شده توسط شهرداری اونجا و چشمنداز بی نظیری داره و شما به رایگان میتونین از این خدمات استفاده بکنین. شاید به جورت بتونم بگم که ده نفر آدم توی کل پارک نیست و شما همزمان میتونین توانید بزرگرهای اطرافش که شامل چمران و همت هست رو نگاه بکنید و این بزرگراه جای سوزنانداختن نداره و هزاران هزار ماشین در حال رفته آمده این معجزه زمان ماست، این ماشین و در کنارش موبایل چیزی که اگر ماشین به شکل فیزیکی شما رو جابجا جا میکنه به کیلومتر اون طرف ظرف نیم ساعت دیگه میتونین پنجاه کیلومتر اون طرف بریم و یه چشمندازه متفاوتی رو در یک استان دیگه ببینید ما وقتی از تهران به زرخش میدیم سه تا چهار تا استان رو عوض میکنیم استان تهران استان البرز استان قزوین بعد موسانی گیلان ظرف 3 ساعت این همه تربیه و, و کلی چشمنداز از چند تا تونل رد میشیم روتونه میبینیم جنگل میبینیم چند تا شهرک صنعتی بیدر و پیکر و دودکش و آلودگی دیگه هوا میبینیم جایی که هواش خیلی تمیزه میبینیم و الا ماشاءالله تغییر در چشمه موبایل هم به شما این امکان رو میده که در همون جایی که نشستین در کسری از ثانیه برین به یه جای دیگه ای عکس پسرمتون رو تو امریکا ببینین ویدیوی یه گربه رو که داره یه سگ رو اذیت میکنه ببینید نمیرم هر چیزی که تا حالا بشریت تجربه نکرده و برای اولین بار اتفاق افتاده رو میتونیم ببینین هر حماقتی رو که سیاستمداری امریکایی چی می‌ام به بقیه دنیا دارن تحمل می‌کنند رو از نزدیک ببینید و هر فنتسی که دارین رو می‌تونید ارزاب کنید به شکل ذهنی و تجسمش رو در عالم واقعیت به شکل ویدیو اکس متن و نمی‌ام هر رسانه دیگه که قابل انتقال هست با این دیوایس یعنی موبایلی که تو دستتونه تجربه بکنید میکس اینام خیلی دیگه میکس جالبیه یعنی کسی که در داخل ماشین یا اتوبوس یا هاپیما با سرعت خیلی زیادی در حال حرکته و این حرکت رو با تجربه استفاده از اطلاعات این ویدیوهای اکسا که گفتم روی گوشی موبایلش اینتنستر میکنه شما مثلا کنار سفید رود با سرعت 100 کیلومتر این حرکت میکنید و به جای که به مناظر اطراف سفید رود نگاه کنید سرتون میمیرید تو گوشی و یک ویدیو نگاه میکنید مربوط به چند ده هزار کیلومتر اون طرف دریا اصلا مربوط به سفر یه نفر به کره مریخ نمیدونم یا هر فانتزی دیگه‌ای که دارین خلاص اینه که کسی که حوصله‌اش سر میره و حوصله سر رفتن یعنی که نمیخواد اون جایی که هست باشه میخواد یه جای دیگه‌ای باشه چند فیزیکی و چهر ذهنی امروز کاملا میتونه این تجربه رو داشته باشه و من واقعا یادم نیست یادم نمیاد که آخرین باری که حسالم صرف کی بود من مدت هاستی که دیگه از این درد و از این مشکل برای همیشه رها شدم شاید همینم همینم هست که به زندگی من خیلی معنا داده و زندگی من خیلی لذت بخش کرده من ما خیلی خوشحالم از اینکه اینجوری دارم زندگی میکنم و خیلی خوش داره میگذره. زندگی خیلی خوبی دارم به خاطر اینکه هر لحظه ای که نمیخوام اونجا باشم میتونم اونجا نباشم. مگر رنج بردن به اینه که شما در وضعیتی قرار دارید که نمیخواید در اون وضعیت قرار داشته باشین. یه بوده دیگه هم هست که شما در وضعیتی میخواین باشین که نمیتونید باشید. اون مشکل رو من هنوز نتونستم حل بکنم. اگر مش... ولی ولی این مشکل رو من ندارم یعنی خیلی هم نداشتم. شاید مثلا زمانی بوده که یه چیزی اسباب بازی می‌خواستم بخرم که نمیتونستم بخرم که این مشکل در دوران بچگی خیلی زود تبدیل به یه عقده شد و بعد این عقده فرو خورده یا سرکوب شد و بعدم یه جاهایی در ذهن ناخودآگاهم شاید داره پرسه میزنه و به عنوان بکگراند فکری من اگر شما یه روانشناسه خیلی مجرحبی میتونی این رو تحلیل بکنیم و شناسایی کنیم توی چرندیاتی که میگم از اینا که بگذاریم مشکل بارز من اینه که نمیخوام یه جایی باشم مثلا امروز یه جلسه خیلی بورینگی داشتیم یه جایی خیلی خوشابه هوا و خوشایند که بخشی از من نمیخواست اونجا باشه بخشی از من داشت لذت میبرد مثلا زمانهایی که میتونستم خودمو ساکت بکنم که فقط از زیبایی درختای چنار سر به فلک کشیده و نسیم بهاری لذت ببرم در یک باغ خیلی بزرگ داخل تهران لذت میبردم و زمانهایی هم که این نیمه خالی لیوان خیلی پر رنگ میشد که جلسه بورینگی رو دارم توش وقتم رو میکنم به جایی که پادکست روز دوشنبه رو به موقع زبط کنم و منتشر بکنم سعی میکردم حواسم رو منحرف کنم در کل خوش گذشت و زندگی من در کل خوش میگذره به خاطر اینکه در مجموع بیشتر در موقعیت های قرار میگیرم که نمیخوام اونجا باشم و خیلی سریع میتونم مثل اینکه که ماشین رو روشن بکنم یا سرم بکنم توی گوشی موبایلم یا حداقل به لحاظ ذهنی این توان رو پیدا کردم که تمرکزم رو منعطف بکنم به یه چیزی دیگه اگر آدم بتونید کار بکنه تعداد لحظات ناخوشایندش خیلی کمتر میشه مثلا شما از مناظر زشت رح حلب یابادوی قبل از اه، کرج ظرف 10 دقیقه 20 دقیقه بسته به ترافیک اگر خیلی به ترافیک سنگینی نخورین رد میشین دیگه چه جایی ممکنه توی مسیر ناخوشایند باشه بین توی اتوبان رشت گذشتن از شهر منجیل و شهر رودبار خیلی ناخوشایند بود به خاطر اینکه شما باید از وسط شهر رد می شدید شهر منجیر متفاوته به خاطر اینکه شهر خیلی مثل رودبار توریستی نیست و من همیشه عذاب می کشیدم که ما به عنوان توریستی که داریم از وسط شهر رد میشیم و کل شهر یه خیابون درازه، خیابون دیگهی خیلی نداره فهم هر دفعه احساس عذاب وجدان می کردم که زندگی کل این مردم تحت تاثیر این ترافیک مسافری قرار میگیره و, و همیشه این آدمانی که ارز خیابون می‌خواستن رد بشن رو میدیدم که تو دلشون احتمالا فرش میدن به این مسافران چند وقت پیش یعنی همین چند روز پیش بلاخره اتوبان غزمینرشت امتداد پیدا کرد و شهر منجیل رو دور زد یه چند تا تونل درست شد و کسانی که با موسمت سفر می‌کنن دیگه لزومی نداره شهر منجیل رد بشن این هنوز شهر رودبار رو بایپس نکرده و بعد از شهر رودبار رد بشید. شهر رودبار هم تقریبا به جز یکی دو تا خیابونه خیلی محدودی که بجز این خیابون اصلی که امتداد اتوبان هست چیز دیگه نداره و کل این خیابون فروشگاه های زیتونه شاید بگم، 500 تا یا شد هم 1000 تا زیتون فروشی یعنی کل شهر رودبار رو مغازه های زیتون فروشی تشکیل میده یعنی اگر شما یه سوپرمارکت مارکت که چه میدونم مثلا یه بسته نمک بخرین بایدی که یه سوپر توی این خیابون اصلی پیدا بکنید همه زیتون فروشی هست این شد برای کسی که مثل من به مناظر اطراف بیش از اندازه نگاه میکنه صحنه خوشایندی نباشه بذاافین که در تعطییل ها خیلی ترافیک زیادی ایجاد میشه. به جز این از تهران تا زرخشت خیلی صحنه ناخوشاینددی نیست که ظرف چند دقیقه جای خودش رو به یه صحنه دیگه نده من فکر میکنم این بی جایی یا چند جایی یا هر چیزی که اسمش رو بذارین قسمت عمده ای از پدیده زندگی منو تو این سالا میتونه تعریف کنه اینکه بیشتر از چند دقیقه یا چند ساعت یا چند روز قبل از اینکه جامو عوض بکنم یه جای دیگه‌ای در زندگیم ثابت نیست من خیلی از لحاظ ذهنی یعنی سفر فیزیکی بیشتر از سفر ذهنیه یعنی شاید واقعا واقعاً اینطور نیست بجز کتاب که میخونم من کتاب زیاد میخونم با تلگرام و سوشال مدیا خیلی کاری ندارم این رو به عنوان پوز دادن نمیگم این نمیگم کتاب خوندن یه برتری داره نسبت به سوشال میدیا امیدوارم که اینجوری برداشت نشه واقعاً هیچ فرقی اینا با هم دیگه ندارن اینا شما از یه ابزار دیجیتال استفاده میکنین که وارد یه دنیای دیگه بشین حالا اون دنیا رو یا یه نفری 50 سال پیش پنج سال پیش 5 ماه پیش توی کتابی نوشته که من این گرایش رو دارم یا اینکه یه ویدیو روی تلگرام نگاه میکنی یا روی فیسبوک هیچ فرق اینو با هم دیگه نداره از لحاظه سفره به یه دنیای دیگه به یه زمانی دیگه به یه, به یه جای دیگه صحبت کتاب که شد من وسط های کتاب آرد، آب، نمک و مخمر هستم که شروع کردم و خیلی به این کتاب باور پیدا کردم به نویسنده این کتاب فکر میکنم که اگر توصیه هاش رو عمل بکنم میتونم خیلی پیشرفته قابل توجهی تو این نون پختنم داشته باشم. نمیدونم از از هفته پیش تا الان تا امروز فرصت نکردم که یه نون دیگه بپزم. منتوری یه مقدار کتاب رو خوندم و بعد فهمیدم که دو سه تا چیز خیلی خیلی میتونه مهم باشه که من نمی کنم از جمله دمای خمیر و دمای فر. و همینطور وزن مواد اولیی که استفاده می کنم. به خاطر همین دو تا دماسنج و یک ترازو خریدم که منتظرم اونا به دستم برسه ممکنه براتون سوال باشه که چطور هنوز به دستم نرسیده خاطر که اونا رو آمازون سفارش دادم و زمانی که شما می در دنیای اینترنت به زمانها و مکانهایی دیگه سفر بکنید طبیعیه که قیمت ترازوی دیجیتال رو با مثلا در،, در کانادا یا در امریکا با قیمت ترازوی دیجیتال در ایران مقایسه بکنیم ب... این سؤال از پایدو ب... بکنیم که چرا همون ترازوی یا یه ترازویی که قاعدتاً به اون کیفیت هم نیست خاطر اینکه یک برند شناخته شده نیست یا یک... به... یک هیستوری یا یک ریتینگی پشتش وجود نداره به عنوان مثلا فیدبک مشتری هایی که اونو خریدن از خودتون سوال می که چرا من باید این رو در ایران به سه برابر قیمت بخرم؟ با توجه به اینکه تولید داخلم نیست، یعنی این سه برابر قیمت خریدن قاعدتا حمایت از تولید داخلی هم محسوب نمیشه. و وقتی این سوال رو از خودتون می و بعدم هزاران هزار نفر مثل شما بودن که خواستن جای یعنی پلیسشون رو عوض بکنن و مهاجرت کردن و الان دارن در اون کشورها زندگی میکنن. و بعد اونا هم از خودشون یعنی این گرایش رو دارن که سالی یکی دوبار دوباره سفر کنند به ایران به دلایل مختلف بازید از خانواده اینکه دلشون تنگ شده برای کب و کوبیده کله پاچه نمیدونم سفر به کوهای شمال تهران هر چیزی که براشون ناستالجی میاره و میتونن در این برگشت به رایگان از باب دوستی این ترازویی که شما خریدین رو برای شما بیارن همه این رو دست به دست هم دیگه میده که بعضی چیزها رو شما آنلاین از آمازون به نه از کالا یا مثلا از بازار تهران یا از فروشگاه سر کوچتون اینم بخش دیگه از سفر در زمان و مکان بنده هست به کمک اینترنت خیلی از چیزها رو من از خارج از ایران روی اینترنت می‌خرم. حالا به جز کتاب که عمدتا به شکل رایگان و غیرقانونی غیر مجاز یعنی دانلود می کنم مثل لباس رو من خانومم اکثراً از روی اینترنت می خریم و یکی از دوستان یا چند تا از دوستان بری ما میارن یک پنجم قیمت تقریبند تمام میشه. شاید واقعا ما شهروندان مسئولی نیستیم یعنی به اندازه که باید و شاید به تولید ملی اهمیت نمیدیم و از خود گذشتگی نمی کنیم بهشادم واقعا باور نداریم که این پولی که ما بابت خریدن چندین برابر یه سری کالا های بیسیک میدیم این پول صرف توسعه تولید ملی میشه نمیدونم اینا همش با همه در هر صورت من یه, تر... دو تا... یه ترازود دوتا دماسنج که یکیش دماسنج داخل فره و یکیش دماسنج استلاحاً instant probeه که در لحظه دمایی مثلا چیزی داخل خمیر رو نشون میده مثل یه سوزن چون میتونی فرو بکنی داخل گوشتی که داره میپزه یا خمیری که گردین و دمایی داخلش رو بسنجین هر دوش دیجیتال... یکیش دیژیتال یکیش اغربیهیه این ستا قلم رو من خریدم به قیمت 50 دلار کانادا یعنی 150 هزار که اگر داخل ایران میخواستم بخرم باید یه دو بوده 300-400 هزار تومن پول میدادم البته نبا اون کیفیتی که از کانادا خریدم اینم داستان سرمانگذاری من در پختن نون بود یه زربان مثالی دارن نمیدونم این زربان سال آمریکایی یا انگلیسیه که میگن put your money where your mouth is یعنی جایی که حرف میزنی پولتم هم بذار یعنی پولت هم خرج کن فقط حرف نزن به تجربه ثابت کرده من زمانی که یه ایده ای دارم و براش پول خرج میکنم نه همیشه ولی بعضی از مواقع این باعث میشه که من اینو جدی ترش بگیرم این مثلا در زمینی باشگاه ورزشی یعنی کلاس ورزش رفتن برای من جواب نداد یعنی وسطش فل کردم با وجودی که پول داده بودم دو سه مورد اینجوری بوده که پول دادم و بعد فلش کردم یعنی خیلی جدیش نگرفتم به خاطر یعنی صرف اینکه اون پول دادنه برای من ساختار حمایتی به وجود نگورده ساختن زرخشت ولی اینجوری بود یعنی من هزار بار وسط این فرایند میخواستم رهاش بکنم و اگر پول نده بودم و این پول از یه حدی بیشتر نمی بود قطعا رها کرده بودمش. ولی این باعث شد که بالاخره به جایی برسه که دیگه ترکیبی از پول خرج کردن زحمت کشیدن عرق ریختن خونه دل خوردن باعث شد که این داره به سر انجام میرسه یعنی خیلی زود شاید. به سرانجام که رسیده یعنی ساختمون کامل شده فقط مثلا در حد این که اگر بخوام من این رو تبدیلش بکنم به یه کسب به یه، <تصفيق> و کار گردشگری که خودم شهیدم باش مخالفم ولی شاید به عنوانی حرکت نمادین یعنی نماد این که کاری بکنم که خودم به شدت مخالفم یه مثلا مکان گردشگری بدم بریکفست یه مسافرخونه اونجا را بندازم شاید تا یکی دو ماه دیگه در اون حد تکمیل بشه. ها داشتم در مورد وسایل نونوایی میگفتم که این دو تا چیز رو خریدم که بعد از گرفتنش امیدوارم اولین رسپی یعنی اولین نون خیلی با دقت و دقیقم رو به کمک این وسایل تست بکنم اگرم خیلی دیر اون مسافر بیاد ایران شاید به همون روش قبل فقط با ایده های این کتاب یکی دو بار دیگه به نون پختن ادامه بدم این, این داستان هفته گذشته بود توی چند قسمت اخیر قابل توجهی که تقریبا نکسی دیگه کامنتی داره در مورد این پادکست من مطلبی به 822 ات علیس خوادی داتکان میفرسته خیلی هم بد نیست بر سکوت به این پادکست گوش بدین امیدوارم که خوشتون بیاد مثل یه سفر یک روزه به قزمین میتونید بهش نگاه بکنید لزومی نداره خیلی جدی و عمیق باش درگیر بشید تا هفته بعد خدافظ